شما رسیدیم به شماره المطلب الرابع الصحة والبطلان ما انواع احکامات وزئی رو خاندیم یعنی سبب و شرط و رو ها الان رسیدیم به الصحة والبطلان صحیح بودن و باطل بودن آیا اینها جزء احکامات تکلیفی هستند یا نیستند؟ این مسائلو ان شان الله در این شماره 35 جو بررسی خواهد کرد. معنا از سیحت و بوطلان معناي صحت و بوطلان هست خودش میگه؟ بگه افعال المكلفین. آقا دقت داشته باشید. افعال المكلفین. اذا وقعت بصوفيه اركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها دقت داشته باشيد میفرماید افعال مکلفین افعال ما افالی کی مکلفین زمانی که واقع شدند با تمام ارکان و تمام شرایط مصطوفی بودند ارکان و شرایط یعنی شرایط و ارکان کامل بودند مصطوفی یعنی کامل بله بگه شارع حکم به صحیح بودن آنها میکند زمانی که افعال مکلفین با شرایط کامل و با ارکان کامل انجام گرفتند شارع حکم به چی میکند صحیح بودنش و اذا لم تقع على هذا الوجه و زمانی که بر وجه واقع نشدند یعنی ارکان کامل نبودند شرایط کامل نبودند حکم الشارع بعدم صحتها ای ببطلانی ها شارع حکم به عدم صحتشون بیکند یعنی به باطل بودنشون ما قبلا شرط رو خونديم و ارکان رو شرایط و ارکان کامل باشند شارع حکم به صحیح بودن شن بیکند و اگر کامل باشند حکم به باطل شن بودن باله حالا معنای صحیح بودن چه هست و معنای باطل بودن چه هست اگر گفت آقا این عمل صحیح هست یعنی چی و اگر باطل یعنی چی میگه و معنا صحتها انها تترتب عليها آثارها الشرعیه فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها وإذا كانت من المعاملات كعقود البيئ والإجارة والنكاح ترتب على كل أقد الأثار المقررة له شرعان نقدر أشتبه شيد بيجيب معناي سهيح بودانش إن حسكي آثار شرعی برش مترتب میشه به چه شکل زمانی که اون عمل از عبادات بود اثر شرعی برش میاد آقا برایت ذمه میشه مکلف زمهش چی میشه بری میش. قبل از انجامش وظیفش بود که نمازو انجام بده اگر با و ارکانش خون و شعر حکم به صحتش داد دیگه زمهش چی میشه بری میشه خلاص آقا انجامش داده اون اولون وظیفه رو چیکار کرده؟ انجام. انجام داده پس آثار بگه معنای صحیح بودن یعنی که آثار شرعی برش مترتب میشه یعنی چی؟ یعنی اگر از عبادت بود از زمش بری میشه زمش دیگه اشغول نیست یعنی متردتب میشه میاد بله متردتب میشه بر اون آثار شرعی یعنی اون اثر شرعیشو بگیره اثر شرعیشو داره و اذا کند من المعاملات و زمانی که اون فعل اون فعلی که شرایط و ارکانش رو رعایت کرده انجامش داده بود از معاملات بود اینجا دیگه بحث نیست، زمنیست اینجا اون آثار خودشو بگیره مثلا معامله بود خلاص جنس میره دست شما پول بیاد دسته معامله بوله دیگه مال تو دیگه اگر زمانی که اون عمل از معاملات بود مانند معاملات خرید و فروش مانند خرید و فروش یا اجاره یا نکاح هر یکی از اینها از این عقده ها اون آثاری رو که شر براش مقرر کرده سرش میاد آثار چی میشه روش مترتب میشه یعنی اگر خرید و فروش بود خلاص بلکیات تغییر میکنه ها پس گفت که معنای صحیح بودن چه است یعنی اون آثار آثار شرعی برشی میشه مترتب میشه اگر صحیحه و معنا بطلانها و اگر و معنای باطل بودن چه هست گفت اگر شرایط و عرکان کامل نباشند باطله حالا بگه که معنای باطل بودن چه است و معنا بطلانها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها فإن كانت هذه الأفعال من الإبادة لم تبرأ ذمة المكلف منها وإن كانت من الأقود لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من آثار شرعية لقد داشت واشيد معناي ما تلمودن آن إن هسك آثار الشرعي برش مترتب نمشي آثار اثر شاری برش نمیاد بله اگر اون کار از اف... اون افعال از عبادات بود ذمه مکلف بری نیست یعنی آقا سر روس هست با دوباره انجام بدیم و اگر از عقود بود نکاح بود خرید و فروشی بود اجاره چیزی بود از عقود بود اون موقع اون آثار شرعی برش مترتب نشده آثار شرعی برش مترتب آقا اون نکاه صورت نگرفته اون نکاه صورت نگرفته اثر شرعی برش نیومده اثر شرعی نکاه اینه که بعد از این که طرف شد دیگه برش حلال میشه طرف مثلا میاد دوتا دختر داره دختر دیگرشونشون میده اون نکاه باطل میشه خب و بعض الاصولیین الان صحت و المطلان من قبیل الحکم تکلیفی بعد از این که به وضوح توضیح داد معنای صحیح بودن و معنای باطل بودن عمل رو ها چه در معاملات چه در عبادات حالا بیاد و بیگه که بعضی از اصولیون گفتن که صحیح بودن و باطل بودن از جزو احکامات تکلیفی هستند و ذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الواضعي قروه ديار أصولها جزء أحكامات وزئي حسد و القول الثاني هو ما نرجحه دكتور زيدان قال أنه ما ترجحه هو قول دوفوبية يعني جزء أحكامات وزئي حسد كيف قال؟ لأنه ليس في الصحة والبطلان فعلا ولا ترك ولا تخيل بگه چون اینجا تلوی دیگه وجود ندارد فعلی وجود ندارد ترکی وجود ندارد اختیاری وجود آثار مترتب نشده بلکه آثار برش مترتب نشده موقعی که ما بگیم این چیز صحیح نیست یعنی اون آثار شری روش نیومده از این زاویه نگاه میکنند خب دو یکی تکلیفی بود یکی وضعی بله. تکلیفی معنی چی بود؟ بعد مرور نه از کُلن بود که آقا شریعت اساسا یا انجام کاری رو طلب کرده بود یا شد خب الان اگه مثلا نکاهی خب باطل باشه مثلا ترک اصلا باید دید ترکمون ازدواج انسان صورت وا در می رید خب ها بحث کول آثار سرش نمیاد یعنی انجام نشده دیگه خلاص فقط انجام نشده بس اینجا بله روح عزیز زاویه خب حالا یه مسئله دیگه یه مسئله دیگه که خیلی مهم هست چرا ما میگیم خاندن وصول مهمه از این جات آیا باطل و فاسد به یک معنی یا نه؟ اینو بیاد بررسی بی میکنه بیگه البطلان و الفساد به معنی واحد اندالجمهور بیگه باطل و فاسد یک معنا دارند در نزد جمهور اگر جمهور گفتند این عمل باطل است یا فاسدت معنی همونیک فکل عبادت او عقد فقد بعض ارکانه او بعض شروطه فهو باطل او فاسد ولا يترتب عليه اثره الشرعی پس هر عبادت یا هر عقدی که بعضی از ارکان یا بعضی از شروطش را نداشت پس آن باطل است یا فاسد است و اثر شریع برش مترتل نمیشه فبع المجنون باطلون میگه معامله خرید و فروش مجرود چیه؟ باطل. باطله لخللن فی رکنه و هو العقل چون در رکن معامله خلل وجود داره آه؟ فروشنده اومده دا دا چیز درون؟ بله خودش منقصان داره پس اینجا در روکن معامله ایراد وجود داره خور رکن یکی از طرفه رو میگن رکن یکی از دو طرف رو میگن چی؟ روکن معامله دیوانه بوده چی بوده؟ دیوانه بوده بله و کما یسمه بیعو المجنونی بالباطل یسمه ازن بالفاسد بگه همانطور که معامله یا بهتر بگیم خرید و فروشه مجنون باطل نابیده میشه همچنین فاسد هم نامیده میشه تبقیه اصطلاحه خب بریم جلوتر تفسیرش بکنه فس هماتر که باطل نامیده میشه فاسد هم نامیده میشه و البیع بثمن غیر معلومه و بثمن آجل غیر معلومه يسمه بالباطل والفاسد و انکانل خللو فی بعضی شروط البیع دون ارکانه بیگه کم آملك خرید فروش با سمنه غیر معلوم آ چیزی رو فروخته با سمن غیر, غیر معلوم یا با سمنی با مدت غیر معلوم یوسن بالباطل و هم باطل نابیده میشه هم چی هم فاسد هم باطل نابیده میشه و هم مور مورد؟ نه متواجه نید مورد؟ مورد؟ کجا این متواجه نید؟ مورد؟ مورد؟ مورد؟ آقا، طرف مومده معامله زده معلوم نیست چقدر بیاییم کتاب مال شمایه، پولش مشخص نیست اینجا درگیری پیش میاد رو بردن رو قیمتش یکی بیگه که آقا سی توان، یکی دیگه بیگه چی؟ این باطله، این معامله رو هم میگن باطل و هم چی؟ خاصی مگر جمهور نگفتن باطل و فاسد یک هست؟ مم. الان داره طب قبول نظریه جمهور میگه که آقا این هم باطل و هم چیه؟ فاسد فاسد مم. مم. اگر چه که خلال در شرایطش بود دو طرف ایراد نداشتن رو قیمت بود رو چی بود قبلا ما خودیم آقا فرقه با رکن و شرط چیزی رو میگه که داخل در حقیقت و شرط خب آره آره خوب حالا بعد از اینکه توضیح و اعراضات که باطل و فاسد به یک معنا هستند در نزد جمهور و گفت باطل و فاسد اون چیزی هستن که یا خلال در رکن باشه یا در رکن مانند اینکه یکی از طرفین قرارداد مشکل داشته باشه داشته. که همون رکن شه دیوانهی بیاد عقدی ببنده و شرایطش مثل که پولش مشخص, مشخص, مشخص نبود حالا اما, اما الحنفیتو فعدام تفصیل و اما در نزد احناف تفصیل وجود داره ببینید اما در نزد احناف در نزد احناف آیا باطل و فاسد به یک معناه هستن یا نه تفصیل وجود داره یعنی در بعضی در عبادات از قبل بتون بگم فاسد و باطل به یک معنی هستن یعنی اگر احناف در کتب عبادت مثل صلات، سیاه گفتن این چیز فاسده یا باطله معنیش یه چیزه ولی در معاملات نه به باطل چیزی دیگه میگن و به فاسد که خودش الان اینو پاسف میده توی شافعیه با جمهور بودن در نظر شافیه فاسد و باطلیه که معنی ما، ما، شکیه فقط در نظر احناف فرق میکنه فاسد با باطل. فقط مذهب با جمهورن؟ بله. کلا جمه... بحث جمهور یعنی اکثریت. فرق نمیکنه اینجا هر کدوم اگه دو تا مذهب اختلاف داشته بحث هر دو تا رو میآورید. بله. ولی چون اینجا فقط احناف این دو تا در نظرشون فرق میکنه اینا رو آورد؟ اگر شافیه هم مثلا در نزدشون بین فاصله و باطل فرقی داشت اونا رو هم باید خب، بگه در نزد احناف چی وجود داره تفسیل. تفصیلات وجود داره به چه شکل الف العبادات، یک در عبادات بگه اذا فقدت رکن من اركانها ها کس بلا رکوعی او فقدت بعض شروطها. ها كالصلاة بلا وضوء فهي في الحالتين تسمى باطلة أو فاسدة ولا يترتب عليها أثرها الشرعي فالباطل والفاسد إذنهم بمعنى واحد في العبادات. دقل داشت باشي بيجي عبادات زباني كه؟ ان إبادتين رق نيرو نداشت بانا انده نماز بدون رقو يا نماز بدون سجده یا شرطی رو نداشت مانند نماز بدونه بزو بگه در, در این دو حالت یعنی در هر دو حالت چه رکنین رو نداشت و چه شرطی رو باطل. این عمل باطل و فاسد نامیده میشه در نظر اهناف. و اثر شهری برش مترتب نمیشه چرا؟ چون میگه باطل و فاسد در عبادات جمعنید. یک معنا داره اگر گفتند باطل یا فاسد همون یه چیزه همش در ابادات ولی بله در چیها در ابادات. ال معاملات اما در معاملات فرق قائلن بین باطل و بین چی فاسد. یعنی آقا اگر اون معامله روکنش مشکل داشت اسمش چیزی دیگه است اگر شرایط بود اسمش که الان جواب میده. بگه المعاملات و هی الوقود و التصرفات معاملات اقود و تصرفات بگه در معاملات اذا فقدت رکنا من ارکانها ها باطله بیت باطلتا و لمیترتب علیها اخرون شرعیون کما فی بی المجنود دقت داشته باشید بگه زمانی که اون فعل رکنی از ارکان رو نداشت باطل نامیده بیشه فاسد دیگه نه چی نامیده بیشه؟ ماطر اگر ركن نداشت و اثر شرعی برش اصلا مترتب مانند معامله مجنود آقا ای بیاد این کتاب رو به شما بفروشه اینجا خلال در چی وجود داره؟ در رکن معامله آقید در اون کسی که داره عقد می‌بنده، میبنده قرارداد یا مثال دیگه بیاره و نکاح البحاری بی مال علم به الحرمه یا نکاح شخص بیاد و با خالص ازدواج کنه با بحرش چیکار کنه با کسی که حرامه بیاد ازدواج بکنه این جهام باطل بش میادن در رکن در چیه و اذا استوفت ارکانها ولیکن فقدت بعض شروطها صبيه فاسده دیگه زمانی که ارکان کامل بودند اون ارکان معامله‌ای بودند قرارداد کامل بودند ولی بعضی از شرایط مشکل داشتن در چه اینجا میگه فاسد نابیده میشه پس اهداف که تفصیل قائل بودند میگن اگر خلال در رقد بود باطل نابیده میشه و اگر در شرایط بود قاصد فاسد. قاصد برای وترتب برای... عجه برای فهم اینجوری مثلا با... با... بله. در بله صد بالا بالا 100 درصد اینو میگن اینو خو... حتی از بعضی از اصولیین معاصر مثل اشقر که مثلا بر مستصفای امام غزالی تعلیق زده و اون ایجا میگه میگه در تقسیم بندی برای فهمیزن اصطلاح برای فهمیدن چی اصطلاح بريم جلوتار بيجب إذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها صبيت فاسدة وترتب عليها بعض الآثار إذ أقام الآقد بتنفيذ العقد، كما في البيع بثمن غير معلوم أو النكاح بغير شهود ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع وفي النكاح بلا شهود يجب المهر اذا حصل فيه دخول و تجب على المرأة العدت عند عد الفرقت و يثبت فیه ان نصب لحق الطفل. دیگه قد داشته باشید آثار دیگه زمانی که ارکان کامل بودند. منطحه درش. بعضی شروطو نداشت. فاسد نمیده میشه و بعضی از آثار برش مترتب میشه بعضی از آثار برش میشه؟ مانند خرید و فروش با سمن غیر معلوم آقا شما چیز رو فروختی یا خریدی ولی سمنش پولش معلوم نبوده خب یا نکاح بدون شاهد ایر توضیح میده جرجلوتر بیگه در معامله ملکیت برای مشتری ثابت میشه که آقا این شد مال اون زمانی که با اجازه فروشنده چکارش کرد اونو تحویل گرفت و در نکاح بدون شاهد هم بهریه واجب میشه زمانی که دخولی صورت گرفت و واجب میشه بر زن عده اگر زمانی که باهم چه شدند؟ مسترس مسترس شدند. یعنی بعضی از آثار میگه چی میشه در فاسد. بعضی از آثار مترتب میشه. و نسب هم ثابت میشه. به خاطر رعایت حق طفل. به خاطر رعایت حق چی؟ اید. تفل خوب. دوباره میگه فلبات ولند الحنفیه ما کان الخلل فيه راجع الى ارکان العقد ای الى العقد او العاقدات او محل العقد حالا دقت کنید که اینجا واضحتر تر بفهمید که ارکان ارکان شنو بیبره که در معامله ارکان به چه چی چیز میگن میگه باطل در نزد حنفیه آن است که خلل به ارکان عقد بر بگرده یا یعنی در ارکانش باشه خلال کجا باشه در ارکان. در ارکان باشه یا در سیغه عقد باشه که آقا فروخت میش شما بگی خریده میش مشکل داشته باشن یا مشکل در آقیدان باشه یکی شو دیوانه باشه آه مشکل دیگه ای داشته باشی یا روی محل عقد باشه روی چه محل بال بله. یعنی همون كالا والفاسد ما كان الخلل فيه راجعا الى اوصاف العقد لا الى اركانه اما فاسد ان اسكي خلل به چه بربرگردي به وصفهاي عقد به شرطاش نه به خود اركان فاركانه سليمت ميگه در فاسد اركان چه هستن سالما ولكن الخلاله طرا على بعض اوصاف كما في مجهوليه ثمن البيع بیگما خلال در بعضی از اوصاف معامله وجود داره مالند مجهول بودن پول بامله ثمنش ولهذا يقول الحنفيه با جهت حنفيه میگوین ابن الفاسد ما كان مشروعا باصله لا بوصفه یقدام چه باشی دیگه به جهت حنفیه میگوین فاسدان است که به اصلش مشروع است یعنی آقا ارکانش درستند اما اوصافش درست آقا دو طرف سالمند با هم دیگه معامله زدن سیغه ها خریده و فروزه و همه اینا برابرند بوتوها در بعضی از شرائطش مشکل وجود داره دیگه به این خاطر حنفیه میگوید فاسدان است که به اصلش جهس معامله؟ مشروع هست اما به وصفش مشروع باید سمنش هم مشخص میشد باید سمن هم چی بیشد و این الباطل اما در مورد باطل میگن مکان غیر مشروع لا به اصلیهی ولا به وصفه اما باطلان است که میگن نه به اصلش مشروع و نه به وصفش یعنی هم ارکانش مشکل دارن و هم همه چیزش خوب پس اگر مختصر کنیم این اصطلاحات صحت و بطنان رو صحیح و باطل توضیح داد که چه هستن؟ صحیح آثار شری برش مترتب بیشه باطل اونه هست که آثار شری برش مترتب نمیشه, نمیشه. بعد از این گفت که بین باطل و فاسد آیا فرق هست یا یعنی نه جمهور به یک معنی به کارشو بیبرن باطل و فاسد یک معنی دارن الا حنفیه حنفیه در عبادت باز هم میگن معنای فاسد و باطل یکیست ولی در معاملات فرق داره اگر خلال به ارکان باز بیگشت بهش باطل میگفتن ولی اگر به شرایط و اصاف بر بیگشت اون موقع بهش چی میگفتن فاسد